زمائم فصل چهارم ویرانی بخارا اتا ملک جووینی مبرخ ایرانی در کتاب تاریخ جهانگشا ویران شدن شهر بخارا را که دژ دانش و فرهنگ بود به دست مغلان شهر داده است خانان و قواد و اعیان که اعیان زمان و افراد سلطان بودند و از عزت پای بر سر فلک می نهادند، دستگیر مزلت گشتند و در درگای فنا غرق شدند. از غنغولیان یا توده مردم از مردینه به بالای تازیان زنده نگذاشتند و زیادت از سی هزار آدمی در شما رامد که کشته بودند و سغار اولاد و اولاد کبار و زنان چون سرو آزادان قوم برده کردند. یکی از بخارا پس از واقعه گریخته بود و به خراسان آمده حال بخارا را از او پرسیدند گفت آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند جماعت زیرکان که این تغییر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی موجسر از این سخن نتواند بود پایتخت مقالان در قراقرون ای برای تمرکز بخشیدن به حکومت و ایجاد مکانی برای ملاقات با سفررا تصمیم گرفت که در قرارغروم مغولستان در نیمه راه بین عروس های و تلوی پایتختی برای امپراتوری مغول بسازد در صدده سیزدهم میلادی ویلیام روبروک راهب فرانسوی از این پای تخت که آن را کارکررووم خواند دیدار کرد او شرحی در دست نویس خود سفر ویلیام روبروک باقی گذاشت که در کتاب معموریتی به آسیا به تدوین کریستوفر داوسون منتشر شده است. در مورد شهر غراغروم می توانم بگویم که بدون به حساب آوردن کاخ خان این شهر کوچکتر از روستای سنت دنیس است و سومه سنت دنیس ده برابر بیشتر از آن کاخ ارزش دارد. در آنجا دو محله وجود دارد. محله سارسنها همان مسلمانان که بازارها در آنجا قرار دارند و بازارگانان بسیاری به علت نزدیکی دربار به آنجا و حضور شماری از فرستادگان سیاسی در آنجا جمع می شوند. محله دیگر محله خطاییان همان چینیان است که همگی سنتگرند. غیر از این محله ها کاخهای بزرگ کاتبان دربار قرار دارند. دوازده بودکده متعلق به ملتهای مختلف، دو مسجد که در آنها قانون محمد همان اسلام اعلام می شود و یک کلیسا برای مسیحیان در انتهای دوردست شهر وجود دارد. شهر به وسیله یک حسار گلی محصور شده است و چهار دروازه دارد. در کنار دروازه شرقی ارزان و قلات دیگر که به ندرت به آنجا آورده می شود، در کنار دروازه غربی، گوسوند و بز در کنار دروازه جنوبی گاو و گاری و در کنار دروازه شمالی عصب به فروش می رسد